اما اینجا ایستاده بر روی سنگفرش خیابان به نظرم می رسید که میتوانم پدرم را درک کنم. میدانستم همانطور که آنجا ایستاده هم از من عکس گرفته می اینکه تصویری من وجود داشت عکسی از من در اعاق زیر سطح خاکستری آب از من تصویری وجود داشت و من مشتاقانه میخواستم آن را ببینم. اگر کسی با من به انگلیسی صحبت می کرد می توانستم پاسخش را به انگلیسی بدهم. و اینجا روی سنگفرش پیاده رو مقابل خانه هدویک برایم موضوعی واضح و روشن شد که همیشه از روشن شدن آن نگران و دلواپس بودم چیزی که از بازگو کردن آن برای کسی خجالت میکشیدم برایم خیلی اهمیت داشت پیش از اجرای مراسم رسمی به کلیسا برسم و پس از عبادت وقتی کلیسا به تدریج خلوت میشد، آنقدر آنجا بمانم تا خادم کلیسا چنان آشکارا دسته کلید را جیرینگ جیرینگ به صدا در آورد که من متوجه شدم وقت ترک آنجا فرا رسیده است درست مثل گارسون هایی که وقتی میخواهند کار را تعطیل کنند صندلی ها را روی میز قرار می دهند اما غم ترک اجباری رستوران شباهتی به اندوهی که من در وجودم هنگام اخراج از کلیسایی که در آخرین دقیقه وارد آن شده بودم نداشت به نظرم می رسید که حالا تازه آن مسئله ای را که درکش تا آن موقع برایم غیر ممکن بود میفهمم اینکه ویک ببر در عین با تقوا بودن میتوانست پست و رذل هم باشد و اینکه او جدا هر دوی این صفات را داشت پرهیزکار و رذل و من تنفر خودم نسبت به او را آشکارا نشان میدادم درست مثل بچه ای که باد بادکی را که تمام وقت در یک بعد از ظهر یک شنبه تابستانی با حالت متشنج محکم نگاه داشته و بعدا آن را به یک باره رها کند تا سعودش را شامگاهان در آسمان ببیند. تا آنجا که باد بادک کوچک و کوچکتر می شود. طوری که دیگر قابل رؤیت نیست. صدای آه کشیدن ناشی از تنف نسبت به ویک وبر را شنیدم. با خود گفتم با ماشین به آنجا برو. و برای یک لحظه چشمم را از در برداشتم و سعی کردم آهی که از ته دل کشیده بودم را نگاه کنم و برای این لحظه آنجایی ماندم که مورد نفرتم بود پوچی خلایی که به نظر می رسید مرا چون حباب آب که ماهی را با خود می برد با خود حمل می کند. فقط یک لحظه بعدا احساس کردم که این فضای خالی با چیزی پر می‌شود. چیزی که به سنگینی سرب بود با سنگینی مرگ بار حس بی دفاوتی. گاهی هم به ساعت هم نگاه میکردم اما هرگز به عقبه ساعت شما رو دقیق شمار توجهی نمیکردم بلکه تنها به دایره خیلی کوچک بیاهمیتی که روی عدد شش تعبیه شده بود نگاه میکردم آنجا بود که زمان برایم میگذشت. فقط این عقربه نازک چابک پایینی در من تاثیر می‌گذاشت و نه اغربه های بزرگ و کندی که آن بالا حرکت می‌کردند و این عقربه چابک نازک با سرعت حرکت می‌کرد یک ماشین بسیار دقیق اما کوچک که قطعاتی را از جسمی نامرئی جدا می‌کرد از زمان و این ماشین در فضای خالی شوخ می‌زد و سوراخ می‌کرد و گرد و قباری که بر اثر این سوراخ کردن در فضا پخش می‌شد همچون شیعی سهر آمیز بر روی من می نشست و مرا تبدیل به یک ستون غیرقابل حرکت میکرد دختران سالن لباسشویی را میدیدم که برای نهار از در بیرون میرفتند دیدم که از نهار باز میگردند خانم فلینک را دیدم که در آستانه در سالن ایستاده است و سرش را تکان میدهد مردم از پشت سرم عبور میکردند مردم از جلوی دری که هدویک می از آن بیرون می آمد می مردمی که برای یک لحظه جلوی در را می‌گرفتند و من به همه چیز و تمام آن کارهایی که باید انجام می دادم، فکر می کردم. اسامی پنج مشتری بر روی کاغذ سفیدی که در ماشینم داشتم نوشته شده بود. و ساعت شش اصر هم با اولا در کافی یوس قرار داشتم. اما به هیچ به اولا فکر نمیکردم. دوشنبه چهاردهم مارس بود و هدفیک از در بیرون نیامد. ساعتم را کنار گوش چپم نگاه داشتم و صدای حرکت سری و مزهک اغربه کوچک را میشنیدم. اغربهی که در فضای خالی سراخهای ایجاد میکرد. سراخهای سیاه و گرد که جلوی چشمانم شروع به رخزیدن میکردند و دوباره اطراف در خانه دست دست ظاهر میشدند. از یک دیگر جدا میگشتند و در آسمان رنگ پریده همچون سکه هایی که به درون آب پرتاب میشدند سقوط میکردند. پس از چند لحظه دوباره در محدوده‌ای دیدم سوراخ هایی پدیدار شدند همچون ورقههای حلبی که از آنها در کارخانه ویکوبر برش های چهارگوش نیکلی میباریدم و من در هر کدام از این حفره ها در خانه را میدیدم. صد بار در دیدم. هر بار همان در را می دیدم. درهای کوچک ولی واضح که به شکل دندانه نازک به هم زنجیر شده اند. درست مثل تمرهایی که بر روی ورقی بزرگ قرار گرفتهاند. صد بار هم چهره مخترع شمع ماشین در نظرم آمد. مستحصل درون جیبهایم به دنبال سیگار کشتم. گرچه می دانستم که دیگر سیگاری برایم باقی نمانده است. تنها یک پاکت دیگر در ماشین بود اما ماشین در 20 متری سمت راست در خانه قرار داشت. گویی بین من و ماشین به اندازه یک اقیانوس فاصله است. به یاد زنی که در خیابان کبه زندگی میکرد و پای تلفن اشک میریخ افتادم. او مثل زنهایی گریه میکرد که سر از ماشین در نمی آورند و من ناگه ها متوجه شدم که فکر بیرون کردن اولو از سرم بیهوده و بیفایده است و به او فکر کردم. این کار را چون کسی انجام دادم که به یک بار تصمیم میگیرد در اتاقی که مردهای قرار دارد چراغ را کند. در اتاقی نیمه تاری که مرده به سان انسان ای به نظر می رسد و شخص می تواند این طور به خود تلقین کند که صدای تنفس او را می شنود. حرکاتش را می بیند اما بعد پرتوی نوری تند صحنه را روشن می کند و شخص می بیند که مقدمات مراسم به خاک سپاری و تشیه جنازه نیز فراهم شده است شمدانها را آماده کساشتند گلدانهایی با نخلهای تیغ دار و جایی در سمت چپ زیر پای متوفا یک برامدگی به چشم خورد بر روی آن پارچه مشکی رنگی به شکل غریب چین خورده است. مأمور مؤسسه مراسم تدفین آنجا چکشی که فردا با آن تابوت را می میخ کند آماده گذاشته است. و از همین حالا صدایی که فردا شنیده خواهد شد به گوش می رسد. تنها صدای نهایی کوبیدن میخ به تابوت چوبی که اصلا آهنگ و ملودی ندارد. اینکه اولا هنوز از مسائل اطلاعی نداشت فکر کردم به او را سختتر میکرد. دیگر هیچ چیز را نمیشد تغییر داد. دیگر هیچ چیز قابل برگشت نبود. همان که میخواای در تابوت را دیگر نمی توان بیرون آورد. اما او هنوز این مطلب را نمیدانست. به زندگی مشترکی که ممکن بود با او داشته باشم فکر می کردم از دیدگاه او من مثل یک نارنجک دستی بودم که از آن به عنوان زیر سیگاری استفاده می شود و حالا روی یک پیانو قرار گرفته است. روزهای یک شنبه پس از نوشیدن قهوه خاکستر سیگار را داخل آن می ریزند. دوشنبه ها آن را تمیز می کنند و همیشه هنگام تمیز کردن آن احساس دردآوری به آدم دست می دهد. که روزی خیلی خطرناک بوده است ولی امروز از آن به عنوان زیرسیگاری استفاده می شود. به ویژان آدم شوخ طبعی که این زیرسیگاری را درست کرده است. فتیله را طوری کار گذاشته است که با کشیدن دکمه چینی سفیدی که مثل دکمه‌های مخصوص خاموش و روشن کردن چراغ خواب به نظر می‌رسد، یک باتری پنهان باعث سرخ شدن های ظریف و نازکی می‌شود که توسط آن می توان سیگار را روشن کرد. وسیله‌ای خطر که در حقیقت برای اهداف خطرناکی ساخته شده است. 999 بار میتوان دکمه را کشید بدون آنکه خطری متوجه کسی باشد. اما هیچ کس نمیداند که آیا بار هزارم ویژگی مکانیکی و مخفی این وسیله عمل خواهد کرد و آیا باعث انفجار این اسباب بازی بامزده خواهد شد؟ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. صرفا چند که آهن به اطراف پرتاب میشود و امکان دارد که به کسی هم صدمه جدی وارد نیاید. انسان میترسد و سعی میکند در آینده با احتیاط بیشتری از این وسیله بهره ببرد. برای اولا هم اتفاق بد و خاصی نمی افتاد و این انفجار شاید جان او را نمی گرفت اما از جهات دیگر او را تحت تأثیر قرار میداد. او خیلی حرف میزد. خیلی هم حرف میزد. و من دقیقاً می دانستم که او چه می گفت؟ شاید حق با او بود. ممکن بود تا اندازه احساس رضایت و پیروزی می کرد. و من همیشه از مردمی که حق داشتند و ابراز پیروزی می کردند و بعداً معلوم می شد که واقعاً این طور بوده و حق داشتند متنفر بودم. این آدمها به نظرم مثل کسانی می رسیدند که روزنامه ای را آبانه می شوند. اما همیشه از اطلاعیه مندرج در روزنامه مبنی بر این که اگر روزنامه به خاطر حوادث غیر مترقبه روزی به دستشان نرسد، هیچ گونه مسئولیتی را نمیپذیرند، سرسری رد میشوند. اگر یک روز روزنامه واقعا به دستشان نرسد، به نحوی ناپسندیده عصبانی میشوند. آنها می بایستی همچون قراردادهای بیمه، در روزنامه مطالبی را که با حروف کوچک چاپ شدهاند با دقتتر بخوانند تا عناوین و تیترهای درشت تازه موقعی که در خانه را دیگر نمی دیدم، به یادم افتاد که منتظر چه چیزی بودم منتظر هدویک در را دیگر نمی دیدم. ماشینی بزرگ به رنگ قرمز تیره که من آن را خوب می شناختم جلوی در قرار گرفته بود روی این ماشین با خطی کرم رنگ نوشته شده بود سرویس ویک وبر و من عرض خیابان را طی کردم و به طرف دیگر رفتم چون می بایستی در را می دیدم. مثل کسی که آرام زیر آب می آهسته قدم قدر مر می داشتم و آه می کشیدم. مثل کسی که از وسط انبوه خزه های سرخ و قهوه رنگ و صدف های زیاد و از کنار ماهی های شگفت انگیز به آرامی سربالایی ساحل را چون کوهی پیموده و وحشت کرده است. چون دیگر سنگینی لوله های آب را بر گردنش احساس نمی کند، بلکه سبکی لوله های هوا را که ما به راحتی هم می کنیم حس می کند دور ماشین باری چرخی زدم و انگامی که در را دوباره دیدم میدانستم که هدویک دیگر پایین نخواهد آمد او در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود گرد و غبار نامرعی روی او را کاملا پوشانده بود قباری که اقربه ی شمار با سوراخ کردن فضای لایتناهی پراکنده کرده بود خوشحال بودم از اینکه او مرا وقتی با دسته گل آمده بودم نپذیرفته بود و خوشحال بودم که او فورا متوجه شده بود من با او قصد انجام چه کاری را دارم و از آن لحظه وحشت داشتم که او مرا بپذیرد لحظهی که بالاخره روزی فرا می رسید که باز هم در همان روز دوشنبه اتفاق می افتاد. در خانه برایم بی اهمیت شده بود به نظرم رسید آدم احمقی هستم. تقریبا به احمقی آن زمانها موقعی که مخفیان پیشبند زن صاحبخانهام را بوسیده بودم. به طرف ماشینم رفتم و در را باز کردم. بسته سیگاری را که در داشت برد سمت راست زیر دسته رسیده مخصوص شمارش کیلومتر و محاسبه ساعت کار بود برداشتم. سیگاری روشن کردم. در ماشین را بستم و نمیدانستم چه کار باید بکنم. آیا باید بالا به با اتاق هدویک میرفتم، و یا اینکه که سراغ خانومی که در خیابان کور زندگی میکرد و پشت تلفن اشک میریخت. ناگهان دست ولف روی شانه هم قرار گرفت. دستش را همانگونه که سنگینی لوله آب را احساس کرده بودم حس کردم. حتی با نگاهی از گوشه چشم سمت چپم می توانستم دستش را ببینم. همان دستی که به من سیگارهای بیشماری تعارف کرده و سیگارهای بیشماری از من گرفته بود. دستی تمیز و ماهر و من در پرتو خورشید ماه مارس توانستم حتی برق حلقه نامزدی را بر دستش ببینم و از حرکات لرزان و آرام این دست می توانستم احساس کنم که ولف می خندید خنده ی آرامی که از ته دل بود همونطور که آن وقتا در مدرسه مهندسی می خندید در همان لحظه پیش از آنکه رویم را رو به طرف او برگردانم چیزی را که آن وقت ها حس کرده بودم یعنی وقتی که پدرم مرا قانع کرده بود در جمع همکاسی های سابق مدرسه هم شرکت کنم احساس کردم. دیدم که آنجا نشستند. کسانی که سه چهار شش و یا سال از زندگیم را با آنان تقسیم کرده بودم. کسانی که هنگام بمباران های هوایی با هم در پناهگاه چنبات بمیزدیم. مشخای شب درست مثل کارزار هایی بودند که با همت و کوشش یکدیگر بران آن غلبه کرده بودیم. مدرسه ی آتش گرفته را با هم خاموش کرده بودیم. معلم لاتین را که مجروح شده بود، پانسمان کردیم و از آنجا بردیم. با هم در امتحانات رد می‌شدیم و درجها میزدیم. و این طور به نظر می‌رسید که این مشاهدات ما را برای ابد به هم پیوند می‌دهند. اما ما با هم پیوند جاودانی نداشتیم. تنها خاطره‌ی آن وقتها تعم تلخ و بد اولین سیگاری بود که به شکل پنهانی کشیدیم و میل به لمس دست گارسون سنی بود که آبجو را برای ما سرو می کرد. خدمتکاری که آدم برای اولین مرتبه در زندگیش می بیند و به یک بار آنقدر به نظر نزدیک و صمیمی می رسد که در نظر حس اعتماد به مادر را تدایی می کند. برخلاف احساس غریب و بیگانگی نسبت به انسانهایی که خیال می کنند, تمام اهداف والای زندگیشان را از دست دادند اهدافی که هرگز نداشتند اهدافی که شخص تازه شروع به دوست داشتنشان می کند. چون دیگران آنها را از دست دادند. احمقهای تیر وقتی که وقتی از آنها پرسیده شود حقوق ماهیانه شان چقدر است کمی لاف میزنند و حقیقت را نمیگویند و تازه آدم متوجه میشود تنها رفیق واقعی که داشته کسی بوده است به نام یورگن برولاسکی که در کلاس دوفم از دنیا رفت. هیچ کس حتی کلمه ای با او صحبت نمی کرد چون او زیاد به پول نمی چسبید و به نظر قرقرو و ابوس می رسید او هنگام شنا در یک غروب تابستان زیر یک کرجی کوچک شناور پایین کارخانه چوب باری غرق شد جایی که درختان از میان شکاف های سنگ های آبی رنگ بارانداز سرکشیده بودند جایی که آدم می توانست با لباس شنا روی جاده سیمانی که تنی درختان بید قرار داشتند اسکیت بازی کند، آن هم تا لب آب علف های هرز از لابلای سنگ فرشا سرزده بودند نگهبان شب که مشغول جماوری هیزان برای بخاری خود بود با صدای بلند فریاد می‌زد، دیگر بس است حالا دیگر بس کنید برولاسکی با جسه نحیف فاست خانی خود اسکیت نداشت مایای شنایش به رنگ صورتی بود مادرش آن را از یک زیرپوش برایش درست کرده بود و بعضی وقت با خودم فکر می کردم. او مدام شنا می کند تا ما لباس شنایش را نبینیم. تنها برای چند لحظه خود را از تختهای شناور بالا می کشید و می نشست. بازوهایش را به دور زانوهایش حلقه می زد و صورتش به طرف رودخانه راین بود. و به سایه سبز تیر رنگ پل نگاه می کرد که شبها تا روی کارخانه چوب بری میافتد. هیچکس ندیده بود که او داخل آب بپرد. و هیچ کس کمبود او را احساس نمی کرد. تا اینکه یک شب مادرش با چشمان گریان در خیابانها دوان دوان از خانه ای به خانه ای دیگر می رفت و سوال می کرد پسرم را ندیدی؟ یورگن پسرم را ندیدی ای؟ پدر برولاسکی با لباس اونیفورم سر قبرش ایستاده بود یک درجه دار بینشان هنگامی که ما همه با هم ابراز تأصف خود را این گونه بیان کردیم برادر، مرگ خیلی زود تو را به قبر فراخواند، خیلی زود، تو خیلی زود به سوی قبر سرش را متفکرانه بلند کرد و به ما گوش فراداد در حین دیدار هممدرسهی ها فقط می به برولاسکی فکر کنم و به بازوی سفید و زیبای گارسون زنی که دوست داشتم دستم را بر رویش بگذارم به مایه‌ی صورتی رنگ برولاسکیی که از زیر پوش مادرش درست شده بود، با کش پهن جوراب زنانه، برولاسکی در سایه‌ی سبز تیر رنگ پل ناپدید شد. برادر، مرگ خیلی زود به سوی خود فراخاند. سرم را آرام به طرف ولف برگرداندم. به سیمای خوب و پرتلاش تلاش اون نگاه کردم. صورتی که از هفت سال پیش میشناختم و تا اندازهی خجالت کشیدم. درست مثل موقعی که پدرم در حین کشرفتن کارنامه مرا به دام انداخته بود. ولف گفت تو باید به من کمک کنی. من قادر به پیدا کردن عیب فنی ماشین نیستم. لطفا بیا. با احتیاط دستم را کشید. با همان احتیاطی که آدم دست فرد نابینایی را می کشد. مرا به آهستگی به سالن رخشویی هدایت کرد همان بویی که اغلب به آن عادت داشتم به مشامم رسید بوی لباسهای کثیف که روی هم انباشته شده بودند و دخترها را دیدم خانم فلینک را دیدم همه رو پوش آنجا ایستاده بودند همان گونه که آدم بعد از یک انفجار در پی توده یک گرد و قبار همان چیزی که مرده می انگاشته دوباره رویت می کند صدای آنها را می شنیدم که متفق قول می گفتند داغ کردند سه بار آزمایش کردیم اما فایده ای نداشت تمام ماشین ها از ولف پرسیدم فیلتر ها رو باز کرده ای بله همه کثیف بودند همه رو تمیز کردم و دوباره بستم و تمام ماشین ها رو گرم کردم خانم فلین گفت بهترین مشتریم ام را از دست خواهم داد منظورم هونن هست است او بهترین مشتری من است و در صورتی که ملحف ها تا از حاضر نباشد من او را از دست خواهم داد به ولف گفتم لوله های آب را باز کن و تماشا می کردم که او چگونه لوله های آب را از هر چهار ماشین باز می کند همزمان صدای دخترها را هم می شنیدم که با هم درباره باره ها صحبت می کردند و با مستخدمهای هتل تجربیات یک دیگر را در اختیار هم می کساشتند. آنها اغلب فاتحانه ملحفه های وزرا و هنرپیشگانی را به من نشان میدادند که لکه های لب رویشان به چشم میخوردند. پله ها را جلوی بینیم میگرفتند تا بوی اطر آنها را حس کنم. اطری که معشوقه یکی از اعضای حزب استفاده میکرد و این چیزها به نظرم خیلی جالب میرسیدند. اما ناگهان فهمیدم که تا چه حد وزرا و اعضای حزب برایم بی تفاوت بودند. حتی زندگی خصوصی آنها هم اصلا برایم جالب نبود و اسرار خصوصی زندگی آنها می توانست با آب کف صابون از ماشین رخشوی خارج شود. میخواستم دوباره از آنجا بیرون بروم. از ماشین ها متنفر بودم از بوی محلول کف و صابون بدم میآمد دخترها در حالی که نخودی می میکردند ملحفه یک هنرپیشه که آشفتگی و پریشانیش برای همهشان واضح بود، دست به دست میچرخاندند. ولف تمام لوله های آب را باز کرده بود و به من نگاه کرد تا اندازه‌ای حالت احمقانه داشت. بیان که به خانم فیلینگ نگاه کنم، از او پرسیدم: آیا لوله ای آب تعمیر شده است؟ گفت: بله، دیروز خیابان کربماخر را کندند. آب ما از آنجا می‌آید. ولف که شیر آب را باز کرده بود گفت: بله، آب کسیف و رنگ آهن زنگزده است بگذار آب کسیف خارج شود تا زمانی که دوباره شفاف و صاف شود لوله ها رو دوباره ببند همه این دوباره راه خواهند افتاد به خانم فلینک هم گفتم شما بهترین مشتری خودتان را از دست نخواهید داد ملحفات ها از حاضر می شوند. و رفتم، دوباره به خیابان رفتم همان گونه که انسان در خواب و رؤیا از دنیایی به دنیایی دیگر می رود. روی رکاب ماشین ویکوبر نشستم اما به در خانه خیره نشدم چشمهایم را بستم و یک آن در عالم رؤیا اتاق تاریک خانه را دیدم عکس تنها انسانی را دیدم که می دانم هرگز نعره نکشیده هنوز سر کسی داد نزده و ناسزا نگفته است تصویر تنها انسانی را دیدم که پرهیزکاریش به من اثبات شده بود پدرم را دیدم جلویش جعبه مخصوص کاغذ یک قوطی چوبی آبی رنگ که ما آن وقتا در آن سنگ های بازی دومینو را نگاه میکردیم قرار داشت این قوطی همیشه پر از کاغذ یک اندازه است که پدر آنها را از کاغذ اضافی قیچی می کند کاغذ تنها چیزی است که او در مورد آن خصاست نشان میدهد. از نامه‌هایی که شروع به نوشتن می اما ناتمام کنار میگذارد از دفترهای مشق مدرسه که خالی گذاشته شده اند، قسمت نوشته نشده را با قیچی می‌بارد. از کارت دعوت نامزدی و آگهی‌های های فوت، قسمت های چاب نشده را می‌بارد. و از آن کارت دعوت جشن ها که روی کاغذ های اعلاو و زخیم چاپ شده و مردم را به شرکت در جلسات انتشار قطنامه فرا و بالاخره از کارت دعوت های چاپ شده بر روی کاغذهای از جنس کتان که به قصد فراخانی برای صحبت در مورد آزادی است. این کارتها و کاغذ های چاپی موجب شادی کودکانه او می‌شدند. چون او از هر کدام از این کاغذها حداقل شش برگه درست می‌کند که در جعبه کهنه و قدیمی دومینو مثل اشیای قیمتی و گرانبها محافظت می‌شوند. او کاغذ پرست است. تکه های کاغذ را لایه کتاب هایش کیف گذارد. تو جیبیش پر از آنهاست. چیزهای مهم و بی ارزش را روی این کاغذ ها می نویسد. وقتی خانه بودم اغلب تعدادی از تکه کاغذها را پیدا می کردم. روی یکی نوشته شده بود دکمه زیر شلواری. روی برگه دیگری نوشته شده بود مدزارد. و بر روی دیگری خورد کن خورد کردن. و یک مرتبه تکه کاغذی پیدا کردم که مضمون آن این بود. در تراموا چهره ای را دیدم آنگونه که عیسی مسیح می بایستی در حال مرگ داشته باشد. قبل از آن که بخواهد از بیرون چیزی تهیه کند تکه کاغذ ها را بیرون می ریزد و ورق میزند و آنها را مثل انسانی صبور بر حسب اهمیت دسته بندی می کند. درست همانطور که آدم کارت های بازی را ورق میزند و آس ها،, ها، بی, بی ها و سربازها را از هم جدا می کند. در تمام کتابهایش نیمی از این تکه کاغذ ها از صفه بیرون زده است. اغلب آنها بیرنگ و رو و به شکل لکه های زرد رنگی درآدهاند. چون کتابها ماهای متمادی اغلب بدون اینکه مطالعه شوند جایی قرار گرفتند و او وقتی این را پیدا نمی کند که کاغذ ها را دوباره مورد استفاده قرار دهد. در تعطیلات مدارس آنها را جمعوری می کند. و قسمت هایی را که درباره آنها یادداشت برداشته بوده، دوباره مطالعه می کند. به آنها نظم و ترتیب می دهد. او روی این کاغذ های یادداشت، اکثر لغات انگلیسی و فرانسوی، ساختمان جملات و عباراتی را نوشته است که معنی و مفهوم آنها وقتی برایش روشن می شود که دو یا سه بار با آنها برخورد کرده باشد. او در مورد اکتشافاتش با خیلی ها مکاتبه دارد، تقاضای فرستادن فرهنگ های لغت را می‌کند. نظر همکارانش را هم می‌گیرد تا از همه چیز خاطر خاطرجمع باشد. و با پشتکار و پافشاری دوستانه از اعضای هیئت تحریریه منابع مورد نیازش را قرض می‌گیرد. یک تکه کاغذ را همیشه در کیف توجیبی‌اش به همراه دارد. کاغذی که با خط قرمز به معنی چیزی به ویژه مهم و حیاتی یادداشت شده است. کاغذی که بعد از هر بار ملاقات من از بین برده می شود و بعدن دوباره نوشته می شود کاغذی که بر رویش نوشته شده است با پسر بچه حرف بزن به این فکر کردم چقدر آن زمان که به مدرسه مهندسی می رفتم تحجاب کرده بودم از اینکه در خودم هم این پشت کار را کشف کردم آنچرا که درک می کردم و می شناختم هرگز برایم به اندازه آنچه که می دانستم و نمی شناختم جذاب نبود و آرام و قرار نداشتم تا اینکه همیشه تو هم با این آرزو بود که بتوانم به وسیله اطلاعات و دانشم پول به دست بیاورم. انگیزه ای که برای پدر کاملا غیر قابل درک بود. برای او مهم نیست که هزینه پستی یک لغت چقدر می شود وقتی کتاب دریافت و پس فرستاده میشوند. و مسافرت هایی که باید به این منظور انجام شوند. او عاشق کشف این واژه ها و عبارات جدید است. درست مثل یک جانورشناس که جانوری تازه کشف شده را دوست دارد و هرگز به این فکر نمی کند که برای کشفیات خود پول دریافت کند